سلام عزیزو کنم خدمت شما وندگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست هوگ من خوش آمدید در این قسمت درخصوص شخص حقیقی و شخص هوگویی بسیار که سوال می شود که ما قست خرید یک مالی را داشتیم به ما گفتند که وروشندی شما شخص هوگویی است این یعنی چه؟ بسولات کلی و جات اتلاعاتمو مجبور بودنیم که یک شخص حقیقی داری، به یک شخص حقوقی. شخص حقیقی شما هستید، حسن هست، مریم هست. این اشخاص میشوند اشخاص حقیقی. شخص حقوقی، بعنوان مثال شرکت‌ها هستند. مثلاً شما میخوایید بعنوان حسن یک اتومبیل را بخرید از شرکت مثلاً بهمن خودرو. شما که آقای حسن هستید. می‌شвид شهس حقیقی، یعنی چشم دارید، دست دارید، پا دارید، دارای تفکر هستید، می‌بینید، می‌نویسید، می‌خوانید، صحبت می‌کنید. شرکت بهمن خود رو می‌شود شهس حقوقی. یعنی یک جاییست، یک شخصیتیست که مانند من و شما دارای دست و پا نیست خودش نمیتواند حرف بزنند، خودش نمیتواند فکر کند، ببینند این شخصیت حقوقی توسط و قانون ایجاد شده این شخصیت حقوقی مثلا وقتی بخواهد اوتومبیل را به شما بفروشد یک کسی به نام مدیر آمل قرار داد را امضا میکنه در واقع این مدیر آمل آن حیط مدیره این ها ارکان این شخصیت حقوقی هستن که بر اساس اساسنامه شد که این یک اسطلاح حقوقیست یعنی بر اساس سند حوییتی که به وجود آمدن این شرکت را اداره میکنند پس اگر یک مامлеای بین حسن و مریم تفاهمی افتاد، میگویند این مامله بین دو شخص حقیقی است. اگر یک مامله بین مریم و شرکت بهمن خود را تفاوت می داد، میگویند این مامله بین یک شخص حقیقی با یک شخص هوگیست. اگر شرکت بهمن خود را با شرکت سایپا قرار داد ببندند می گویند این قرار داد بین دو شخص حقوقیست پس این که به ما گفته می شود شخصی که با آن معامله می کنید حقیقیس یا حقوقی در همین حد اطلاعات برای ما خافیست